سلام من فتانا هستم و شما به قسمت ششم از فصل اول قصه برای خواب های بنفش رادیو دیوهجده بنفش گوش می کنید بخش ششم آنها چیزهای غیر منتظرهای را در جعبه یخ پیدا کردم جارت با شنیدن صدای مادرش قلتید مادر که عصبانی بود گفت جارد بلندشو ببینم جارد از لای ملحفه ها به بالا نگاه کرد و با خابالودگی پرسید چی شده؟ لحظه ای فکر کرد مدرسهش دیر شده تا اینکه یادش آمد خانهشان را عوض کردن و اون هنوز به مدرسه جدید نرفته است مادرش گفت بلند شد جارد میخوای بانمود کنی چیزی نمیدونی؟ خب بهتره بری پایین و ببینی که چی شده آشپسخانه زیر و رو شده بود ملوری با جارو تکه های شکسته یک کاسه چینی را جارو میزد دیوارها با مایع شکلات و آب پرتقال رنگ شده بودند تخممک های خام از چهارچوب پنجره ها سرازیر شده بودند سیمون پشت میز آشپسخانه نشسته بود بازوهایش پر از کبودی های شبیه کبودی های دیروز ملوری بود و چشمهایش قرمز بودند انگار گریه کرده بود مادرش پرسید خوب و منتظر جواب شد جارد به تک تک آنها نگاه کرد و گفت من من این کارو نکردم آنها نمی باور کنند که او مرتکب چنین کاری شده باشد مگر نه و آنجا روی کفاش بسخانه کنار برشتوک های ریخته شده و تکه پرتقال رد پای کوچکی را روی آرت ها دید رد پاها اندازه انگشت کوچکش بودند. و او با وضوح رد پاشنه یک پا و زائده هایی را دید که باید جای انگشت های پا باشند جارد به آن طرف اشاره کرد و گفت ببینید دیدید جای پاهای كوچولو ملوری سرش را بلند کرد و چشمهایش از خشم تار شدند گفت جارد دهن تو ببند مامان گفت دیشب تو رو پایین دیده تو اون جاپاها را درست کردی جارد با فریاد پاسخ داد نخیر من نکردم ملوری گفت پس چرا توی فریزه رو نگاه نمیکنی ها جارد پرسید چی سیمون به امر با صدای بلند گریه کرد مادرشان جارو را از ملوری گرفت و آرت ها و برشتوک ها را جارو کرد جارد گفت مامان جاپاها نه. اما مادرش توجهی به او نکرد با دو حرکت جارو تنها مدرک او به زباله ساده تبدیل شد ملوری در فریزر را باز کرد هر بچه غرباقه سیمون در ظرف یخ به یک مکعب یخی تبدیل شده بود و کنارش یادداشتی داشتی با جوهر روی مقوای برشتوک دیده میشد چه که موش گوشت یخی بشه سیمون گفت جفریو قطرلیمو هم رفتن مادرش پرسید حالا چرا نمی که با موشای برادر چیکار کردی جار پاسخ داد مامان من این کارو نکردم من رست میگم ملوری شانه جار را گرفت و گفت من نمیدونم که تو چیکار میکنی اما خیلی زود تشیمون میشی مادرشان گفت ملوری خواهرش او را رها کرد اما حالت نگاهش نشان دهنده خوشونتی بود که در آینده گرفتارش میکرد سیمون بین هق حق گفت: <تصفح> من فکر نکنم جاردین کارو کرده باشه. <تصفح> به نظرم کار جن شرور بوده. <تصفح> مادرشان چیزی نگفت. حالت صورتش میگفت که گول زدن سیمون بدترین کار جارد بوده. گفت: جارد این زباله ها رو ببر بیرون. اگه فکر میکنی این کار شوخیه، بزار ببینم وقتی تمام روز رو طرف تمیز کردن اینجا کردی چقدر به نظر چوخی و تفریح میاد. جار سرش را پایین انداخت. هیچ راهی نداشت که بتواند مادرش را قانع کند. در سکوت لباس پوشید. بعد سه کیسه زباله سیاه را برداشت و آنها را به طرف جلوی خانه کشید. بیرون خانه هوا گرم و آسمان آبی بود. هوا بوی برگهای سوزنی کاج چمنهای کوتاه شده میداد. اما انگار نور روز آرام بخش نبود. یکی از کیسه ها به شاخه گیر کرد و وقتی جارد آن را کشید پلاستیک پاره شد. او ناله کرد. کیسه ها را به زمین انداخت و سوراخ کیسه را بررسی کرد. پارگی وحسی بود و بیشتر زباله هایش بیرون ریخته بودند. وقتی داشت زباله ها را می کرد متوجه شد که آنها لوازم خانه آن موجود هستند. او به تکه های پارچه، سر عروسک و به سنجاخ های مروارید نگاه کرد در نور روز چیزهای دیگری را دید که قبلا متوجهشان نشده بود یک تخمه شکسته کبوتر مقدار زیادی تکه های روزنامه که هر کدام کلمه عجیب رویشان نوشته شده بود روی یکی نوشته بود فروزان و دیگری خودگویی جا لوازم داخل لانه را با دقت از بقیه زباله ها جدا کرد آیا می توانست خانه جدیدی برای جن شرور بسازد؟ آیا مهم بود؟ آیا این کار می توانست آن موجود را متوقف کند؟ به گریه های سیمون و بچه گرباقه های بیچاره و ابله توی تکه های یخفه کرد؟ نمیخواست به جن شرور کمک کند دلش می خواست را بگیرد کتک مفصلی بزند و او را به خاطر بیرون آمدن از دیوار پشیمان کند. وقتی بقیه کیسه های زباله را کنار چمنهای جلوی خانه برد، برگشت و به لوازم جن شرو نگاه کرد. با وجود آنکه نمیدانستان ها را میخواهد بسوزاند یا به صاحبش پس دهد یا کار دیگری بکند، همه چیز را برداشت و با خودش به خانه برد. مادرش در چارچوب در منتظرش بود. پرسید: "اینا چیه؟" جارد گفت: "چیزی نیست." برای اولین بار مادرش از او بازجویی نکرد. دستکم درباره هایی که در دستش بود بازجویی نشد. جارد من میدونم تو از رفتن پدرت ناراحتی. همه ما ناراحتی. جارد با ناراحتی به هایش نگاه کرد. ناراحتی از رفتن پدرش دلیلی نبود که او خانه جدیدشان را ویران کند یا برادرش را طوری نیشگون بگیرد که کبود و سیاه شود یا موهای خواهرش را به تخت خواب ببندد او که فکر میکرد مادرش با سکوتش منتظر پاسخ اوست پرسید "خب مادرش پاسخ داد خوب خوب جاردگیریست نباید بگذاری خشمت بر تو مسلط چه هر وقت ناراحتی با شمشیربازی خودش رو آروم میکنه و برادرت با حیواناش اما تو جارد گفت من اون کارو نکردم چرا باور نمیکنید؟ به خاطر دعوام تو مدرسه مادرش گفت باید اعتراف کنم که وقتی فهمیدم دماغ پسری رو شکستی شوکه شدم من از این چیزا حرف میزنم. سیمون دعوا نمیکنه تو هم قبل از رفتن پدرت دعوا نمی‌کردی جارد با شدت بیشتری به کفش‌هایش زل زد و گفت حالا میتونم برم تو؟ مادر با حرکت سر اجازه داد اما بعد با یک دست شانه او را گرفت و گفت اگر اتفاق دیگه اینجا بیفته تو رو به دیدن یه نفر خواهم برد فهمیدی؟ جارد با سر پاسخ داد اما احساس غریبی داشت یاد حرفهایش درباره باره خاله لوسی و تیمارستان افتاد و ناگهان خیلی خیلی از حرفهایش پشیمان شد شما به قسمت ششم از فصل اول قصه های برای خواب های بنفش رادیو 18 بنفش گوش دادید شما میتونید ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو هجده بنفش با هجده عددی دنبال کنید مهربون باشید و شاد و مهربون